بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بی اندازم اکربان نهایت بارش خداوندی رحمان است که قرآن را تعلیم داد انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت آفتاب و ماه به حسابند و ستاره و درخت با او سجده می کند و آسمان را برفراشد و ترازوی عدالت را برقرار کرد تا در ترازو حق تلفیم نکنید به انصاف وزن کنید و در وزن کمی نوزید و خداوند زمین را برای مخلوقات خود نهاد در آن میوه های و درخت خرمای فدار است در آن خوشه است که دانه آن کاه دارد یعنی دانه با وسط قرار گرفته و دورا دور آن را کاه بوشانیدد و نیز بوته ریحان وجود دارد که نهایت خوشبو است پس ای گروه جن و انس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکزید میکنید؟ انسان را از گل خشکیده همچون سفالا آفرید و جن را از شاله از آتش آفرید پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکزید میکنید؟ او پروردگاری دو مشرف و پروردگار دو مغرب است پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکزید میکنید؟ دو دریا را در هم آمیخت توری که با هم ملاکی می شوند در بین آنها خائل قرار دارد که به هم تجاوز نمی کنند پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکزید میکنید؟ مروارید و مرجان از میان آن دو بیرون می آید. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید و از آن اوست کشتیهای های کوه پیکر ایجاد شده در بحر پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید به روی زمین است فنا شده نیست و تنها ذات پروردگاری تو که صاحب جلال و عظمت است باقی می ماند پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید هر که در آسمان ها و زمین است از او حاجات خود را می جوید او هر روز در شعن ایست از کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ بزودی به حساب اعمال شما می پردازیم. ای دوستکیل جن و انس، از کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ای گروه جن و اینست اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بگذارید پس بگذارید ولی هرگز گذار کردن نمی توانید مگر به نیرویی که از جانب خداوند ارزانی گردد، پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکزید می کنید؟ های صافه از آتش و دود متراکم بر شما فرستاده می شود پس از خود دفاع کردن نمی توانید پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می‌کنید انگامی که آسمان شکافته شود و به با یک بار عظیم چرمی سرخ شود پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می‌کنید در آن روز نه انس و نه هم جن از هیچ کدام از گناهش پرسیده نمی شود پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می‌کنید زیرا مجرمان از سیمایشان شناختن می شود. پس به موی پیشانی و پای خود گرفتن می شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید این همان دوزخی است که مجرمان از آن انکار می کردن. میان آن آتش و میان آب جوشان در رفت و آمدن پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ و برای کسی که از مقام پرویدگارش تسیده است دو بهشت است پس کدام یک از های پرویدگار خود را تکزید می کنید دارای شافه های انبوه اند پس کدام یک از های پرویدگار خود را تکزید می کنید در آنها دو چشمه جریان دارد پس کدام یک از های پرویدگار خود را تکزید می کنید در آن دو از هر میوه دو جوره است پس کدام یک از نعمت های فروردگار خود را تکزیب می کنید؟ هایی که از طرح های آنها از حریر است، تکیزننده اند و میوه رسیده آن دوباره به آسانی در دسترس می باشد. پس کدام یک از نعمت های فروردگار خود را تکزیب می کنید؟ در آن بهشت ها زنان اند که نگاه شان را از دیدن بیگانه باز داشته اند و پیش از بههیشتیان هیچ انس و جن ایشان را مثل نکرده اند پس کدام یک از نعمت های خود را تکذیب می کنید؟ ایشان یا کوت و مرجان هند. پس کدام یک از نعمت های خود را تکذیب می کنید؟ آیا پاداش نیکی جز نیکی چیزی دیگری شده می تواند؟ پس کدام یک از نعمت های خود را تکذیب می و جز این دو بهشت دو به دیگر است پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکزید می کنی؟ باغستانهای سرسبز است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می در آنها دو چشمه فوران کننده است پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می در آنها میوها خرما و انا پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید در آن ها زنان نجیب و زیبا و سر می برند پس کدامیک از نعمتهای پروردیگار خود را تکذیب می در آن هورانی است در های نگه های شده پس کدام یک از نعمتهای پروردیگار خود را تکذیب می کنید که پیش از ایشان هیچ انس و جن ایشان را مسرع نکرده است پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکزیب می کنید؟ بر بالش های سبز و فرش های زیبا و نفیس ازده همد پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکزیب می کنید؟ با برکت است نام پروردگاری صاحب عظمت و مکرمت تو